فصل حداهم خیلی زود رسیدم. طولابی رو صندلی چرمی کنار ساعت نشستم و دخترا رو نگاه کردم. کلی دختر مدرسه‌ای اومده بودن تعطیلات. هزارتاشون نشسته و وایساده منتظر بودن دوستشون از راه برسن. دخترایی که پاره رو پا انداخته بودن، دخترایی که پاره پونه پا انداخته بودن. پاهای خوشتراش بد بدتراش دختره شیک پوش دختری که اگه نمیشناختیشون بهشون میگفتی از اون هفقتان خب دیگه به این میگن یه منظری دلنشین. نشین البته همینم افسردم میکرد چون مدام به این فکر میکردم که چه بلایی سرشون میاد از مدرسه و که فارغ و تحصیل شدن اون وقت چی میشه؟ خب صابلو بود که اکثرشون با یه موش ابلهه ازدواج میکنن با آدمایی که مدام نگران اندازه بنزین ماشینشونن آدمایی که اگه تو بازی گلف ببریشون اخ میکنن و بچه بازی در میارن اصلا گلف که هیچی اگه توی بازی مزخرفی مثل پینگ ببازن هم بوازن همینه با آدمای بد که عمرن تو کل عمرشون یه جلد کتابم خونده باشن آدمای زیادی حوصله سربر البته حوصله سربری رو باید با احتیاط بگم یعنی نمیشه به هر کسی گفت خوصل سربر اینجور دماره اصلا نمیفهمم جدی جدی نمیفهممشون مدرسه الکترون هیلز که میرفتم دو ماهی با یکی به اسم حریس مکه همتاقی بودم حوصله سربرترین بچه باهوشی بود که دیده بودمش صدش روح بود یه تیک زر میزد ولکنم نبود یه یک کلمه از حرفش بدلت نمی‌نشست. فقط یه چیز خوب بلد بود. هروم زده همچین سوت می‌زد که نگو. وقتی تختشو مرتب می کرد یا لباساشو آویزون می‌کرد، پشت هم سوت می‌زد. همیشه خودم در حال لباس آویزون کردن بود. همینشم رو اعصابم بود. همه چی از سرش می‌افتاد جز سوت زدن. یعنی داشت با اون صدای اعصاب خوردکنش زر مفت می‌زد یا داشت سوت می‌زد. آهنگ کلاسیکم میتونست با سود بزنه ولی بیشتر آهنگ جز میزد آهنگ 100 درصد جزی مثل بلوز سخف نازک و میگرفت و آروم آروم با سود میزد اونم درست موقعی که داشت لباسی چیزی ها میکرد راحت میتونست برینه تو حسابت هیچ وقت بهش نگفتم سود زن خوبیه چون از اون چیزایی نبود که بشه باش پست داد اینکه رازی شدم دومات امبولش کنم به خاطر شنیدن همین صدای سود زدنش بود وگرنه نه همچین حوصله سر میبرد که میخواستم خودم رو دار بزنم برای همینه که میگم نمیتونم حوصل بر بودن یا نبودن این جمعاعت رو قضاوت کنم احتمالا باید برای دختر جذابی که با همچین آدمی ازدواج میکنه تتصاف خورد. معمولا آزارشون به کسی نمیرسه شاید همهشون سودزنایی درجه یکی بلغوی باشن کسی چه میدونه؟ من یکی که اصلا نمیدونم بالاخره سالی خانوم از پایین پله سر و سرکلش پیدا شد منم رفتم پایین طرفش خیلی خوشگل شده بود پالتوی سیاه پوشیده بود با یه کلاه پشمی گرد سیاه هیچ وقت کلاه سرش نمیذاشت جالب اینجاست که تا دیدمش با خودم گفتم باهاش ازدواج میکنم دیوونه بودم دیگه همچین ازش خوشم هم نمیومد ولی یهویی احساس کردم عاشق شما و میخوام باشه ازدواج کنم. خودش خیلی خولم. خودمون قبول دارم. گفتش: "حال چقدر خوب شد که دیدمت. یه عمر ندیدمتا. از اوناست که صدای بلندی داره و وقتی باش جایی میری باعث خجالتت میشه. ولی خب معمولا آدما به اینش توجهی نمیکردن. خوشگلیش موضوع حل می کرد." من که نه این موضوع منو خیلی عذیت میکرد بهش گفتم از دیدنش خوشحالم واقعا خوشحال بودم حالا چطوره دختر؟ خوبم دیر کردم گفتم دیر نکرده ولی ده دقیقه دیر کرده بود چه اهمیتی داشت این کاریکاتور مسخره‌ای که روزنامه اثر شنبه درباره منتظر شدن مردا و دیر کردن دختران نشون میداد فقط یه مش مزخرف بود. اگه دختری که منتظرش هستی شیک و مرتب و این حرفا باشه بشه چه اهمیتی داره که چقدر منتظرش بودی؟ هیچی؟ بهتره بریم ساعت 20 دقیقه سه نمای شروع میشه. رفتیم پایین پلا کنار تاکسی ها قرار چی ببینیم؟ نمیدونم زوج لانتز بیلی همینا گیرم اومد زوج لانتز؟ عالیه میدونستم اسمشو که بشنوه کلی حال میکنه تو تاکسی و سر راه تاعتر کمی با هم خوش بودیم اولی سیاد پانه میداد میترسید ماتیکش خراب شه ولی من کوتاه نیمدم و سالی هم چاره ای نداشت ماشین که دوبار پشت رابندون نیش ترمود زد نزدیک بود از صندلی بیافتم پایین این راننده های عوضی اصلا جلوشونو رو نگاه نمی کنن برای اینکه بدونی چقدر دیوونم باید بگم خودم و حسابی بهش نزدیک کردم و زیر گوشش گفتم که عاشقشم دروغ محض بود ولی وقتی که گفتم اصلاح دلم گفتم دیوانم دیگه میدونم به خدا خودم میدونم گفت منم عاشقتم عزیزم بلافاصله فاصله اینکه بده معوت بلند کنی، این مدل علاقه ها بهت نمیاد بلندش خیلی قشنگ میشه خب به درک قشنگ میشد میشد نمایش به اندازه اونایی که همیشه میدیدم افتتصا نبود. نه اینکه همچین ماری هم باشه نه داستان 500 هزار سال از زندگی یه زوج پیری بود. از وقتی شروع میشد که جوونن و پدر مدر دختره نمیخوان دخترشون با پسر ازدواج کنه ولی آخر سر ازدواج میکنن. بعد همینطور به پای هم پیر میشن شوهر میره جنگ و زنم یه برادر دایمال خمری داره جذابیت داستانش زیر صفر بود مرگ اعضای خانوادش برام مهم نبود چون همشون یه مش بازیگران. زن و شوهر زوج خوبی بودن خیلی باهوش بودن ولی واقعا اصلا برام جذابیتی نداشتن مدام از اول تا آخر نمایش با هم چای میخوردن هر بار می دیدیشون یه پیش خدمتی داشت برشون چایی می برد و می یا خود زنه داشت برای کسی چایی می ریخت. تمام مدت همه در حال رفت و آمد بودن سر درد می گرفت باز می و می اومدن آلفرد لونت و فونتین زوج نمایش بودن خوبم بازی می کردن ولی به من نمی چسبید داشتن نه شبیه آدمای عادی بازی می کردن. نه شبیه بازیگرا. دزیش سخته یه طوری بازی میکردن انگاری سلبریتیان. یعنی خوب بودن ولی زیادی هم خوب بودن وقتی یکیشون حرفش تمام می اون یکی پشت شروع می کرد. مثلا میخواستم بگن زیادی واقعاً و یه بند حرف میزنن و می تو هم. ولی آدمش دیگه زیادی حرف هم و قطت میکردن اینا هم عین همون ارنی شده بودن و همون شکل و شمایل اجرا میکردن. اگه کاری رو زیادی خوب انجام بدی بعدی یه مدتی دیگه حواست بهش نیست میفتی به عداعتفار اون کار اون وقتیگه خوب نیست ولش کن ولش کن تو این نمایش فقط همین آقا و خانم لانتز بودن که معلوم بود از بقیه عقل بیشتری دارن این نکته ای بود که نمیتونم ازش بگذرم آخر پرده اول با بقیه رفتیم بیرون سیگار بکشیم چقدرم علکی شلوغش کرده بودن؟ پسر به عمر جتر از این جماعت یده بودی. اینه دودکش سیگار دود میکردن و همچین درباره این نمایش حرف میزدن که همه عالم ای بفهمن این آدم های ای هستند. یکی از این بازیگری احمق سینما کنار دستمون سیگار دود میکرد. اسمش رو ولی ولیین همیشه تو فیلم های جنگی نقش کسی رو بازی میکرد که قبل از رفتن به جنگ ترسش میگرفت و کم می آورد. با یکی از این مبورای خوشگل بود که مدام علکی به هم ابراز عشق میکردن انگاری اصلا مایی وجود نداشتیم ته ادب و حیا بودن اح! حالا بد شد سالی خانم خیلی عرف نمیزد چون خیلی تو دل شده بود و نازش به میومد گاهی فقط از گروه لانتز تعریفی چیزی میکرد بعد یهو یه ته سالون یه دید از اون یارو که فلانل خاکستری تیره و جلیقه ی از این دانش کلمبیا رفته پسر ته آدم تو ویترینی بود کنار دیوار وایستده بود عین چی سیگار دود میکرد و کسالت از سر تا باش میبارید سالی مدام میگفت یاروو میشناسه. همیشه یه یارویو میشناسه. هر جا ببریش یه یا یارویی پیدا میشه که سالی بشنسدش اینقدر گفت که حسلم سر رفت و گفتم خب اگه میشناسیش چرا نمیری جلو با هاشی خوشو بشی و کنی که از ناراحت شد آخر سر انگار خودمون آقای متوجه خانوم شد و اومد بهش سلام داد باید می چطوری حوال پرسی کردن خیال می‌کردی 20 ساله که همدیگر رو ندیدن خیال می کردی از بچه که نافشون رو با هم بریدن رفیق فابری که میگن یعنی همین خالم به هم خورد مزخلش این بود که فقط یه بار توی یکی از این مهمونه جلی همدیگر رو دیده بودن بالاخره بعد از یه ساعت احوال پرسی خانوم به هم معرفیمون کرد جمونم اسمش جورج بود یادم نیست دانشگاه انداورد میرفت تهه تهه ویترینی بود قشنگ وقتی سالی ازش پرسید نمایش دوست داره یا نه همچین قیافه ای گرفت که نگو از این جهلای درست حسابی که وقتی میخوان جوابتو بدن باید برای عدااطفارشون حسابی جا باز کنی آقا همچین عقبکی قدم گذاشت که پاش رفت پای دختر پشتسریش نزدیک بود انگشتای پای دختره لح بشه گفت نمایشنامه شاهکار نیست ولی زوج لانتز خب که هیچی فرشته این محسن توی بازی فرشته؟ خدای من به اونها میگفت فرشته حسابی رو عصب بود بعد با هم درباره دوستای مشترکشون صحبت کردن جلی ترین حرفایی که با عمرم شنیده بودم جفتشون تندی یاد جاهای مختلف میافتادن بعد یاد آدمایی که اونجا زندگی میکردن و اسماشونو به هم می گفتن. دیگه نزدیک بود بالا بیارم بعدم پردهی بعدی تموم شد و این دوتا حرفای مسخرهشون ادامه دادن هل لحظه بیشتر و بیشتر یاد آدم ها و مکانهی مختلفی میافتادن و قسمتش هم جایی بود که این بابای جلی لحنه این بچه دانشگاهی ها رو به خودش می گرفت بچه جی خجالت هم نمیکشید میخواست دوست دختر منو بر بزنه. یا لحظه خودم گفتم گفتملابد میخوادم همینطوری با ما بیاد سوار ماشین شه چون بعد از نمایش دوتا خیابونو با ما اومد. ولی نه. گورش رو گم کرد چون باید با یه مشت عوضی این خودش میرفت جای. نیکبت تو رو به اون جیله قاه چهارخونه مسخرشون تصور میکردم که دور میز نشستن و با همون لنه خم یا زاور ژیولان درن دور هم نماییش و کتاب و زنها رو نقد میکنن. این آدم رو بجور میرینم با عصابم بعد از حرف زدن صد ساعتی سالی با اون عوضی مزخرف ازش متنفر شدم آماده بودم ببرمش خونه که گفت یه فکر بکری دارم همیشه فکرای بکری داره ببین کی باید برای شام خونه باشی منظورم اینه که عجله داری یا نه باید سر ساعت خونه باشی من نه نه نه اصلا آزادم راست در این حرف عمرم بود <تصفيق> چطور؟ بیا بریم رادیوسیتی سیتی پاتیناش فکر بکر خانم یعنی همین <تصفيق> پاتیناش تو رادیو سیتی همین الان تا یه ساعت دیگه میخوای بریم؟ اگه نمیخوای که نگفتم نمیخوام بریم چرا که نه؟ بریم جدی میگی؟ اگه نمیخوایی تعارف نکن خیلی هم مهم نیستا براش خیلی هم مهم نبود میتونی یکی از اون دامنکوتا خوشگل اسکیت رو با کنی؟ جنت کلز هفته پیش رفته بود همین بود که کرمش گرفته بود دوستاش خودش رو توی یکی از اون دامنه ای مخصوص ای اسکیت ببینه خب رفتیم و بعد از اینکه ای اسکیت گرفتیم به سالی یکی از اون دامنه جنگل مینگلی آبی دادم ببوشه خداش خیلی بهش میومد خودش هم میدونست خیلی بهش میاد همینطوری جلوم را میرفت خیلی باحال شده بود نمیشد این کارش کرد. جالب اینجاست که ما بدترین اسکیت بازای کل پیست بودیم بدترین که هیچی افتضاع ترین پای سالی رو یخ که بود بد جور خم می شد شکل باش خیلی مسخره شده بود و به نظرم کلی هم درد گرفته بود مال منم درد گرفته بود داشتم از دردش میمردم فکن یکی که از دور می دیدم اون چی می گفت فقط صد جفت بیکار فضول دور میدون نشسته بودن و مایی که مدام گند میزدیم و نگاه میکردن بلاخره بهش گفتم میخوای بریم بشینیم یه چیزی بخوریم گفت اینم از فکر بکر امروز تو داشت خودشو میکشت بیرحمی بود خیلی دلم به حالش میسوخت. اسکیت ها رو در و رفتیم تو بار نشستیم چیزی بزنیم و اسکیت بازار رو نگاه کنیم تا نشستیم سالی سیگار تارف کردم خیلی رو فرم نبود پیش خدمت اومد سفارش گرفت برای سالی نوشابه و برای خودم نوشیدنی ولی پیش خدمت عوضی برای منم نوشابه آورد بعد شروع کردم کبریت روشن کردن تو مودش که میافتم زرت و زرد کبریت روشن میکنم اینقدر روشن نگاهشون میدارم که تا ته بسوزن و بعد میندازمشون تو زیر سیگاری حرکت حرکت عصبی و داغونی بود خب یه هایی همینطوری رو هوا سالی خانم پرون ببین باید یه چیزی به هم بگی با من میای یا نمیای درخت کریسمس رو تحضیم کنیم میخوام بدونم هنوز سر مچ پاشت تو اسکیت حسابی شاکی بودم <تصفح> نوشتم که میام بیس بار پرسیدی معلومه که میام خب بعد مطمئن شیم زول زد به اطراف اتاق دست از کبریت روشنگردن کشیدم و بهش نزدیکتر شدم چند تا موضوع بود باید باش درمی ببین سالی چیه؟ نگاهش به دختر میز کناری بود تا حالا شده خسته بشی یعنی تا حالا شده از این بترسی که همه چی اونقدر بد باشه که خودت مجبور بشی کاری بکنی تو اصلا از مدرسه پترس خوشت میاد نه حوصله سربره ازش متنفری؟ میدونم حوصله سربره ولی ازش متنفری یا نه؟ خب نه، متنفر نه. همیشه باید ولی من متنفرم. خیلیم متنفرم. تازه فقط این نیست. من از همه چی متنفرم. از تو اتوبوس های خیابون مدیسون و تاکسی ها اون راننده هایی که همهشون سر داد می زنم برو بشین صندلی عقبی متنفرم از اینکه بادم های جلی دوست شم که به اون لانتزا میگه فرشته متنفرم متنفرم مدام با آسانسور بالا پایین برم متنفرم وقتی دارم میرم بیرون آدمما هی بهم به گیر بدن. متنفرم از اینکه لطفا داد نزن. حرفش ممسخره بود. جا اصلا داد نمی زدم. این بار خیلی آروم گفتم. متنفرم از اینکه صفر ماشینشم. با آدمایی باشم که مدام حرف ماشینا میزنن نگران اینن که نکنه رو ماشینشون خط بیفته همیشه از این میگن که با 10 لیتر بنزین چند کیلومتر میشه رفت از این میگن که اگه ماشین تازه‌ای گرفتی چطور میتونی دوباره با جدیدترش عوضش کنی من از ماشینای قدیمی هم خوشم نمیاد برام هیچ جذابیتی ندارن ترجیح میدم اسب داشته باشم سالی اونا حداقل حرف تو میفهمن منظور نمیگیرم مدام حرف تو حرف میاری. آدم نمیفهمه چی میگی میدونی چیه؟ تو تو تنها دلیلی هستی که الان نیویورکم اگه نبودی منم الان یه جایی خیلی دور بودم واسه خودم رفته بودم تو دل جنگل تو تنها دلیلی هستی که الان اینجا عزیزم عزیزم گفتنش از این عزیزم ها بود که یعنی کانولا عوض کن باید امتانی که شده بریم حدرسه پسرونه پر از آدم جلیه به یاد میدن چقدر زبل باشه که بتونی واسه خودت یه روزی کادیلاک بخری و بعد وانمود کنی که نتیجه مسابقه فوتبال وسط ما ما همش بعد راجب دختر و مشروب و رابطه اونجوری حرف بزنی همه با هم جمع میشن یه جا که آره اینطوری اونطوریه. آدمهایی که تو تیم بسکتبالن با هم هم تیم میشن کاتولیکا با هم، روشن فکر با هم، بیریج بازا با هم حتی اونایی که جلسه ماهانه با هم هم تیم میشن. اگه بخوای بینشون یکم از هوشت چیزی بروز بدی ببین خیلی از پسر هستن که سر همین بیخیال مدرسه میشن دقیقا دقیقا بعضیشون همین کارو میکنن ولی تایش تا همینه دیگه نه حرفم همینه دقیقا حرفم همینه من آدمیم که هیچ وقت از تو هیچ چیزی واسم نمیماسه. الان اوزام خیلی ناجوره خیلی خیلی ناجوره وقتی تایید کرد که قبول داره عظم ناجوره یه فکری به ذهنم رسید ببین سالی یه فکری کردم دوست داری از اینجا بزنیم به چاک ببین چه فکری کردم یکی رو تو گرینویچ ویلیج میشناسم میتونه واسه دو هفته به هم ماشین قرض بده همکلاسم بوده و هنوز یه ده دلاری بهم بدهکاره فردا صبح میتونیم با ماشین بریم ماساچوست و بعدش ورمونت اون طرفو جای خیلی قشنگن حای شده بودم فکر هیجان انگیزی بود جوگیر شدم و دست سالی رو گرفتم که شوخی نمیکنم سالی. صد سالی 180 دلار تو بانک دارم صبح که بانک باز شدن میریم میگیریم و بعدش هم میتونیم بریم ماشینو بگیریم جدی میگم تو این خونه های کمپی میمونیم و زندگی میکنیم تا پولمون تموم بشه وقتی پول ته کشید میرم کار پیدا میکنم و میریم یه جا کنار رودخونه خونه, خونه میگیریم و بعدش میتونیم با هم ازدواج کنیم. میتونیم زمستون واسه خودمون چوب درخت رو هیزم کنیم تا گرم شیم به خودم میتونیم با هم خیلی خوش باشیم نظر چیه؟ سالی با من باش نظر چیه؟ باشه؟ هستی؟ نمیتونی همچین کاری بکنی؟ خیلی ناراحت بود چرا نمیتونم؟ آخه واسه چی نمیتونم؟ سر من داد نزن حرف مفت میزد سرش داد نزده بودم چرا نمیتونم سالی چرا نمیای چون نمیتونی همین اولا ما دوتا ایم تازه اگه پولمونم تموم شده و نتونستی کار پیدا کنی چیکار کنیم از گرسنگی میمیریم این حرفت اونقدر خوشبینانه است که حتی باورش سخته خوشبینانه نیست کار پیدا میکنم سالی نگران اونش نباش اصلا نگران نباش مشکل چیه نمیخوای با هم بیای اگه نمیای راحت بهم بگو تونی گفت حرفم این نیست اصلا حرفم این نیست ازش بعدم اومد کلی وقت واسه این کارا داریم کلی وقت بعد از اینکه کالج تو تموم کردی اگه خواستیم ازدواج میکنیم کلی جای باحال برا رفتن داریم تو فقط نه جایی نداریم هیچ جایی نداریم که بریم وقت همه چی فرق میکنه سالی داشتم حسابی افسرده میشدم چی فرق میکنه صداتو نمیشنوم یه دقیقه داد میزنی یه دقیقه اونقدر آروم میگی که گفتم بعد از اینکه رفتم کالج جای باحالی نیست که بخوایم بریم سالی گوشاتو باز کن اون موقع همه چی فرق میکنه اون وقت شدیم همون آدمایی که کیف کار به دست از آسانسور میان پایین باید به همه زنگ بزنیم و ازشون خدافظی کنیم و از هر هتلی که میریم کارت کارتپستالی چیزی بفرستیم سالی من توی شرکت کار میکنم و کلی پول درمیارم و با تاکسی و های خیابون مدیسون این اینورونور میرم روزنامه میخونیم تمام وقت بیریج بازی میکنیم میریم سینما کلی تیزر و فیلم خبری مزخرف میبینیم فیلم خبری خدای بزرگ چی میگم یه مسابقه احمقانی سوارکاری میذارن و یکی پیدا میشه بطری و میزنه بدنی کشتی و میشکونتش یه شامپانزه که شلوار پاشه سوار دوچرخه میشه وقت هیچی مثلا نمیمونه سالی متوجه نیستی چی میگم؟ شاید متوجه نباشم شایدم خودت متوجه نیستی همون لحظه هر دو حسن متنفر شدیم واضح بود که جایی برای ادامه حرف درست حسابی باقی نمونده از اینکه سر بحث و باز کرده بودم احساس پشیمونی میکردم بیا بیا بریم بیرون راستش قشنگ رو حسابمی حرف خوبی نزدم میدونم نباید اینو رو میگفتم ولی خیلی ناراحتم کرده بود معمولا اینقدر بیرحمانه با دختر حرف نمیزنم پسر کفرش در اومد مدام ازش معذرت خواستم ولی گوشش بده کار نبود حتی به گریه افتاد من یه کمی ترسیدم گفتم الان میره به بابا جونش میگه فلانی به هم گفته رو احسابمی باباش یکی از اون حرومزاده هایی کل گنده بود که من ازش خوشم نمی اومد یه بارم به سالی گفته بود که من زیادی قار قار میکنم مودام از سالی از میکردم و میگفتم سالی متاسفم واقعا متاسفم سالی،, سالی متاسفم. گفت آره چونه خودت متأسفی خیلی ای دست از گریه کردم بر نمی داشت با خودم گفتم عجب غلطی کردم همچین حرفی بهش زدم بیا ببرمت خونه سالی شوخی کردم خودم تنهایی میتونم برم خونه ممنون اگه خیال میکنی میذارم ببریم خونه کورخندی هیچ پسری تا الان همچین حرفی بهم به نزده بود همه چیز خنده دار بود برای همین یه کاری کردم که نباید میکردم بعدش زدم زیر خنده از اون خنده های بلند زایه از اونا که اگه خودم سر سینما یا جایی پشت سر خودم نشسته بودم میزدم روشونه هم میگفتم خفش آقا همین بیشتر سالی و کفری میکرد یه کمی به دست و پشت افتادم و ازش عز از خواهی کردم ولی نه خیال نمیشد هی میگفت باید برم و تنهاش بذارم منم آخر سر تنهاش گذاشتم. رفتم تو و کفش و وسیلم رو گرفتم و تنهایی زدم بیرون نباید این کارو میکردم ولی دیگه حساب نداشتم راستش اصلا نمیدونم چرا اون حرف زدم از یه رفتم به ماساچوست و ورمانت و دیگه کجام بردم حتی اگه میخواست بیادم نمی بردمش آدم این کار نبود ولی مشکل اینجاست که وقتی ازش میخواستم باهم بیاد کاملا جدی میگفتم مشکل اصلی من همین بود به خدا من دیوونم